بشنا تو آهم آه ای خدا چی بود گناهم ای خدا آه ای خدا بشنا این صدا می پناهم خدا بیر از شبای سردمن نشکی نشاد هم دردمن اینجا خدا دست غم بسیر این بار تو دستمو بگیر میمیره غم به گوشه بازم تو دستمو غم شده دریای خون آه ای خدا شلون این صدا tan uh -huh.